الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء و سيد المرسلين و آله و أجمعين اما بعد همشنان با كتاب موكزه السيموكزه أمام الزهبي ما مبزيح بحث اشتاهم بحث تدلیس رو دارين بحث مدلس حدیث درج تدلیس اسروي مدلس هست مدلس روايات و مدلس كسي كه تدلیس اصل خود تدلیس اصل خود تدلیس در لغت عربی به معنای پنهان کردن یا ناواشکاف کردن یک چیز مخفی کردن اشیا ناواشکاف کردن اشیا پنهان کردن اون چیز همه به یک معنی هست هم به اعتبار اثبات و به اعتبار نفیش این در اصل لغوی اما در بحث اصطلاحیش ما تعریف برگزیده من تاریخ امام مراقی هست. بهترین تعریفه تو داریم. اول تعریف صحیحه رو می‌خونیم. بعدش ضم می‌بریم به امام ذهبی در كتاب در کتاب مفتیه آورده. خیلی در کتاب امام تاریخ میدیا الاسناد کمن يسقط من حدثه ويرتكي بعن وان ان يصف الشيخ بما لا يعرف به و ذا مقصد یختلف. این حدیث مدلس است اولیش این که تدلیس تدلیس اصناد و دومی آقا تدلیس شیوع تدلیس اصناد کسی که یک راوی را اصفاق بکنه در روایت بین خودش و بین کسی که ازش شنیده مثلا بالفرس یکی از شما ها از من روایت را شنیده لیکن یکی از روایت ها مستقیمن نشکیده، یک واسطه بین من و شما ها هست. شما ایکیران با واسطه شنیدید، اون واسطه را حذف بکنید. اون واسطه رو حضر بکنید، نگید. توهمی جات میشه، چون شما شاگرد من هستید. توهمی جات میشه که چی؟ که شما از من این روایت را شنیده اید. با لبزی که احتمال اتصال در اون باشد. ولأسيك احتماله اتصاد رموش مثل عن ومثل أن ومثل قال ومثل قال عن وأن وقال وغدر هم يدعب بحث مستلهيك المباحثي كمدرين عن عن وحديث عن وحديث عن وأن وحديث عن وأن وحديث عن أن سنسح بي عن مهري رضي الله عد أن رسول الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وأن كلانا قال Anna و An هر دو طال علم و مصطلح حدیث بی اک معنی و یک اعتبارد بس هر داه رابی هر داه رابی روایتی که از شیخش نشدیده باشه با سیغه عن روایت بکنه و اون روایت را از شیخش نشدیده باشد بهش میگنگ تدلی تدلی هندان شادی از شیخش روایت بکنه با سیغه یعن یا یعن قال روایتی که از شیخش نشدیده باشه این تدریسی تدریس اصنا تدریس شیخ چیلیم داریم تعراقی میگوید این یصف الشیخ بی مهلا یعرفو بیهی و ده بی مقصد میختلیفو مثلا به فرد شما اسم منو میدونید اسم منو میدونید میایید مثلا بفرست من را با اسمی که مشهور نیست نیستم مثلا بفرست پدرم دو تا اسم گذاشته شما بیایید از اسمی به کار ببرید که در جامعه شناخته شده نیست سالها بلاخره ها شناسنامه هست خیلی هم هستن دو اسم هستن اسم پدر مثلا بفرست اسم شخص علی هست و اسم شناسنامه مثلا محمده دو تا اسم این چیزی که در اجاز بین قبل قبلان قدیم هم اینطور بوده یک شخص مثلا بفرست چندین اسم داشته یا کنیه داشته معروف بوده به ابو فلان و ابو فلان ابو محمد و ابو علی کنیه خدیل داشته، ادیت داشته یا با اسمای مختلفی قبل از اسلام و بعد از اسلام قبل از اسلام اسمش فنانی بوده اومده اسمش عوض کرده خب وقتی که شما بیایید اسم غیر مشهور را به کار بگرید شیخی مشهور هست اسمش محمد ابن عبدالنس شما بیایید با اسمی به کار بگرید مثلا بگید محمد. ابن ابی محمد. مثلا به جای الله که اسم پدرش هست بکنی پدرش به کار رو که شهرت این شخص در اون نباشه درور من گفته راست دفت لیکن به علتهای اسبابی تونه خواهد اومد و در مقصاد نختلفه به مقاصدی اصلا این مسئله اختلاف من فرق می شخص و شخصی و شخصی دیگه یعنی شاید میخواد خواد اون راوی ضعیفه می با اسم غیر حقیقیش ازش یاد بکنه تا کسی نفهم یا قصد داره که او را با یک شخص سرقی دیگر ما عوض بکنیم دو تا مثلا ما محمد ابن عبدالله داریم میخواد توهم ایجاد بکنه که این محمد ابن عبدالله برای محمد ابن عبدالله بخاریس مثلا یا مثلا فلانی میخواد این توهم ایجاد بکنه حالا این عقلت ها یا این اسباق و عقلت ها خواهد من انشاءالله بر ذکر خواهیم کرده این دو تا تدریسی که ما داریم در انواع حدیث مدلس پ استاد افتادیس شو با این دو تا تعریف مختار از تعاریفات امام عراقی بریم اصل کتاب مدلسی که از شما از روی جزوهتون بذیک درستون ناز بکنم صلاح قول الله المدلس الله المدلس ما فإن قارعا تحتمد ذلك ونظر في طبقته هل يظهر من هو كوفه فإن كان لكيه فقد قررها وإن لم يكن لكيه فأكمل فأمكن أن يكون معصرا فهو محمد طرده وإن لم يمكن فمنقطع كقصاد على الغير وإن على بلد تحس مذيلاس مشهود لأنك إما مذهبين بيات ما رواه الرجل عن آخر وعن آخر ولم يسمعه منه أو لم يترك ما رواه الرجل عن آخر شخصي رجل روايات في روايات ياسر. شخصي بيات ولم يسمعه منه روایتی که از, از این شخص نشید. وشی ایک روایتی هست که این با واسطه شنیده. اولم یود یا اینکه این شخص حالا اینجا به هم ملاقات داره و یا اینکه ملاقات نداره حالا تر بر بینش هست. اولی با شرخش نشیده، ولی که حدیثت خاصی ازش نشیده با واسطه و از احتمال دو بوم این این شخص با این شخص ملاقاته نداشته بسن، نشسته باشه. الان طبق حدیب دومی اولم یدرکو او آیا میشه بچ گفت که این بازم تدریف هست چی میشه گفت؟ مرسل طبی هر جا منافعات منافعات باشه به این شخص لا شخص بیگه شیخ خود شاده میشه تدریف، این چیزی فهمانه همه اچھی چیز یہ پہمان ہے لیکن اگر مخالف ہے بولے دو نہ تھا وہ منافق ہی نہ دیگه چیز یہ پہمان ہے اشدہ را اصل یہ چیز پہمان نہیں ہے تدلیس پہمان ہے یہ چیز بہت پہمان ہے یہاں یہ پہمان ہے شخصی کہ واسطے ہے شاگرد اپنے شیخ ہے وہ اینجا اصلا یہ ای دو نفر کو ہم منافقت دے دیگه چیزی فریحان ایمان داره که بگیری که بله یک شخصی واسطه هست بین این دو شخص که فریحان پس تعدیز امام زهبی هم مرسل خفی را در ور میگیره و هم تدریس هم مرسل خفی هم تدریس به خاطر همینی که امام ابن حجر هم رد بر ابن صلاح مده بهام برزه حبي ابن سلام در مقدمه علم الحديث مين بياد در بحث تدليس و ابو اليروي عن من لقيه وما لم يسمع منه مهمه انه سمعه او سمع منه او عن من عاصره ولم يلقه مهمه انه قد لقيه وسمع منه دي هم بهما در تعريف امام ابن صلاح دارين که موصل کسی که با هم محدود دراغی که با هم معاصرت دارند و که گناقات با هم ندارند برای اینکه تواهم ایجاد بکنه که با هست گناقات داشته رضا شدیده در اینجا باید هست که تواهم ایجاد بکنه برای ما که شابیه این شیفشه میخواد دیگه مثلا به فرمه سلانی شدیدم یا مثلا من شیف خضییه دادم ورا علیت هم خواهد من ابن حجر، ایمان حافظ ابن حجر در کتاب نکه است رده ب گفته ابن صلاح هميده ابن صلاح رحمه الله عليه امام ذهبي ميگه گفته احمد اعثره استاذ حسين بن صلاح من التاديس في شيء وانما هو المرسل الخفي این دو بيده تاديس نيست مرسل خفي است حاضر ایک روي حاصل حالا شوادي كه شما ها بگه چه فرقی بین چه فرقی بينه مرسل خفي است و بينه تاديس فرقش اينه كه اولا در تدریس یک توهمی هست که میخواد راوی ایجاد بکنه که از شیطش شدیده اون را باید خواست با شدیده لیکن این چیزی چیزی در مرسل فقیه هیست این توهمی یاد نمیشه برای ما ها شود از اون دو شخص. از هم نشدیده مثلا اصلت شدیدن اونها از همزیگر منتفیه هست راحت کنید بگید این حدیث منقطعی مرسل فقیه هست و تضرید در خصوص دو راوی هست که از همدیگر شنیدند اما مرسل خفی از دو راوی که از همدیگر نشیدند پس بحث در توهم و بحث در شنیدن اینجا راوی فقط توهم بوده اینجا پس توهم نیست اینجا دو نفر از هم شنیدند یک نفر از هم نشیدند این دو تا شرطی که ما میتونیم بگیم در بحث فرق بین مرسل خفی و بین تضرید خب کسایی که ابن حجر و تعیید کردن در این مسئله امام ابن قطان و همچین امام خطیب بلا داده است. این سه طالم این تفریخ را زد می کنن برای اینکه ما بتونیم در ربایت تشکیس بدیم که این به اساسش انقطاع هست، اساسش،, یا اساسش تدلیسه. دو ترابی با هم نشستن، هم صحبت شدن یا نشدن. اسباب ضعفه، مختلفه. در بحث ما تخلیت حدیث در بحث قضا اتهام خود راوی همه اینها تاثیر داره که مثلا به فرض در بحث مرسل خفی راوی متهم نمیشه راوی تضییق نمیشه مثل مثل مثلا مثل امام حسن بصری یا دیگرانی که نازلند به فرض روایتی را از شیوخش نقد کردن ولی با ارسال ما میدونیم که این روایت ها مثلا به فرض امام حسن بصری از عمر بن خطاب از فلانی و فلان ناجیده و این سبب تضییق راوی نمیشه ولی اینکه اگر ما داریستیم که این راوی تدلیس میکنه تدلیسش را به میشه الان خواهد اومده ما میتونیم الان چند تا جمعه ای که ما گفتیم الان در بخص تعریف تدلیس میتونیم خلاسه چیه این بکنیم که چه چی چیزهایی سبب تدلیس رو ده الان چه تدلیس شیخ و چه تدلیس ده ازناد اتباه ها اولا توهم شنیدن از کسی که از اونش نیده شخصی, شخصی یا این ش تلهو ایجاد بکنه که بله هم‌عصر بوده، شاید در سفرش هم بوده، لیکن این دو نفر مثلا همدیگر نشدن، شاید از شهرش نشیده. هرچند که گفتم شاید ملاقات حاصل شده، ولی که روایتی نشیده راوی از شهرش. خب اینجا دو تا ایجاد بکنه و می‌خواد بگه که بله فلانی چیک منه میخواد خودشو بالا ببره. این یکی از اسباب. می‌خواد خودش رو بالا ببره. همچنین شاید این مسئله رخ بده در وقت مثلا بیاد شیخش رو عوض بکنه با اسم دیگری خطا بکنه که ما فکر بکنیم از هم این بله این همون شیخ سقه هست دو تا شیخ مثل همه میاد مثلا دل فرز دیگه حد دفنه و حد دفنه دل فرز وکیه یا که وکیه ما مثلا مدن رو پرداریم میاد این طبقه هم ایجاد بکنه که ما فکر بکنیم این وکیه بله همون وکیه شیخ مان شاقه ایست دومیه سبب راوی دخت بکنه. به خاطر پنهان گذاشتن یک راویی که ضعیف است و اینم بدترین نوع تدریسه یک راویی که ضعیفه خوصا تدریس تصویه که این رو بهش بینه تدریس تصویه که معروفه که ولی دون مسلم دمشقی بهش معروفه یک راوی مثلا بلفرد اینجا مثلا ولی دون مسلم امام روز راید شیخشه یکی خیلی از دادی هست که یک شخص یک راوی واسد نفره ولید مرسل فروزایی امام ولید مرسل میاد این راوی زعیف را ختم میکنه بهش هم گفته میشه تدکر هم داده میشه و این گفته هم که امام مزی هم در تحضیب التمال میاده در جرح امام ولید مرسل در مشته را توسیخ میکنه و بیان که ستر هست در صورتی که تدویفش او را از رطبه ستر میاده به ر خب امام علیق نصر من اعتراف میکنه. میگه بله. من امام اوزاعی را از این اشخاص زعیف همزه میکنم. پاکسازی میکنم. اشخاص زعیف هم. من بیام اینا را پاکسازی میکنم. این بهتری نوع حدیثه که یک راوی بیاد یک شخص را زعیف را از ازناد بین دو شخصی که با هم مناقب داشتن بیا یک راویی شخص را حد بکنه. عمضه. الان بحثش مفصل، حسدش الله سر جه اگر ذکر رو یادش شد در ادامه بحث اشتالله مفصل بازش راهی کرد لیکن خلاصه این مسئله اینه که در بحث تدریس تصفیه یک راوی یک واسط که ضعیف هست عمدن از از ناس حضب کنه که توهم ایجاد بشه برای ما که اون حدیث صحیح هست توهم ایجاد بشه که این حدیث صحیح سه ومین اسواب تدریس برای این که راوی بگه که من اصانیدم اصانید برتری هست اصانید عالی هست یعنی بین من و رسول الله صلی اللہ علیه و سلم اشخاص کمی هست خیلی قدیمان مثلا دنبال این بودن که اثنازشون کم باشه بین خودشون و رسول الله صلی اللہ علیه و سلم میومدن راویان را بین خودشون را شیخ مثلا حضبی کردن و یا اینکه اون شخصی که ازش رواهد کردن را رو به نحنی دوست نداشت. یعنی بدشون میمده از اون شیخی که ازشون شنیدن واسطم بین خودش و بین شیخش. یک نوع مثلا به فرض دلش ببینه یا خوشش نیاده داشت. بیاد مثلا عمدن این راوی را حضب بکنه. یا اینکه که میخواد طبعه امیجاد رو کنه برای ماها. شیخش خیلی زیاده خصوصا در تذکر شیخ یک شیخ با مثلا با 10 تا اساتید میکنه میخواد ترهور ایجاد بکنه که بگه که مثلا من فلان و فلانی شیخ من هستم یا میخواد که من خیلی کجا سفر کردم مثلا میاد دیگه که من از امام فلان مثلا از اهل بخارا دیدم من از فلانی از اهل مصر دیدم میخواد بگه بله من برای طلب علم خیلی رفتم به فلانجا و فلانجا و یا این که جاهایی هم دیش یک کراوی برای انتحان شاملتان تدریس میکنه و جاهای هم برای تنوع در شیخش میاد مثلا شیخش مثل امام خطیب بغدادی میاد مثلا به فرض شیخش را با چندین اث یاد میکنه مثلا یک شیخش را چندین بار مثلا با هر با یک اث ذکر میکنه که یک تنبوری در کتابش نیاد بشه مثلا در تاریخ بغداد این خلاصه یه بحث اطواب تد خیلی بز و خیلی یا اسباب زعفن و بعضی دیگر نمیشه روی اون انگوش گذاشت و با اون راوی را تزعیف کرد خصوصا آخرین بحث تنبع در شیخ و بحث امتحان این دنو استثناء هستن از کل این اصباب تدریس خب امام از زهبی چنین میگیه فانصف وحب الابتصال وقال حدتنا فهو كذب بحث رابی چنین راوی مدلعه ایان در روایه که تهمت تریبیزانه مدلعه هست بیاید از شیخی که از کونش بیده یعنی روایه که خاصی نشده ملاقات داشته و ازش روایه سو بشیده باید خاصی مثلا احمد نشده این اذا تكونت اجربيات فبرادتك النشيطه ثابت بشه كي بهما اي زواج خاصه راشيده مين راوي مش كذاب قال احتمل ذلك ونذر في طبقته من توقه املا او من هو فوقه وان قال اگر این را بیدی که مدلیت هست بگیرد نیه حتی اتناعاً زید عن احتمال داره که دروغ بگیر یعنی احتمال هست که بخواست دروگی بگیر که با اون سلاحون برای ما ایجاد بکنه که این روایت را از شیخش شدیده ولی که ما باید بیاریم به حالش و به طبقهش نگاه کنیم که آیا این سلی با احمد مراقات داشته یا نه؟ و به بعضییت خودش نگاه بکنیم از لحاظ جلب و تعدیم دروگوه هست، دروگوه نیست، شست و برقاش هست که با کی بوده و کی نبوده سندش رو نگاه بکنیم کهی برو دنیا آمده آیا احده مثلا به فلانجا، جایی که احمد بوده در برقات مثلا به کرد رفته، نرفته همه اینها باید نگاه بشید که آیا راوی در این ابتعاش که عنها، زید عن احمد آیا این در ابتعاش صادق هست یا نه اصلا در اون روز در بردارد بوده اصلا به دنیا آمده اون روز پس باید ما بیاییم وقتی که لفظ عن در اصلاق ببینیم برای برای ما یکی جمالک در خالش هست سته نیست ما باید در این عن یک شگاه که آیا این شخص با این شخص شخص و بر داشتی یا نه جوه هست یا نه مثلا به فرس شما اگر یک واحید مثلا بدونیم فلان راوی از شی میایید مثلا فقط اگر از دو تا کتاب هم بخاری و مسلم و ابو داوود و نسائی و ابن ماجه و ابو داوود و مستدرک محمل و مستدرک دوارمی و معارف المالکی اگر در یکی از این کتاب‌های زبان هم مجلد تهذیب الثمر و بعض و انجیلی تهذیب طلاق کمال امام مزینی امام مزینی چه چیزی شیخ را میار مسافرید موسنین مسلم دمشقی میاد دیگه مثلا بالف شیخ شکی هستند بدانید که نه نه هستند فلانه فلانی فلانی تلامیزش هستند. شیوخ و تلامیز مشخصنده شیوخ و شاگردان. خب پس این اولین کار که ما بیاییم مثلا در ترجمهش نگاه بکنیم که اصلا این دو نفر چیخ و شاگرد هستند یا نیستند. درسته؟ آلا چه در ترجمه احمد بریم ببینیم از شاگردان زید هستند و چه در ترجمه زید بریم ببینیم شیوخش احمد هستند. هر دو تا ما میتونیم انجام بودیم. دومین کاره خود این که به کتاب های وفایات رو در بگردیم بریم به کتاب های وفایات، ما کتاب های خاص داریم نسمی وفایات وفاق های آرما درشن روشته خوصا در خود که هنگی کمال آخر هر تردومی شیخی وفا دشن رو میگه میگه مثلا در فرد این زیر در سال صدر نمه فوت کرده به در سال قرآنی افنانی آمده امام محمد مثلا در سال شدگی در وقت محمد در وقایات کتاب های وقایات بر می‌گردید به سند سندی که به دنیا آمدند و سندی که پود شدن مثلا من مل فرد که مثلا به فرد در سال دبیس نموه پود گوده و معنی من در سال دبیس به دنیا آمدد امام وحمد مثلا به دنیا سال سد و اشتاق و فرده یا ساله نموه راقار بودنیا آمده میون بر وقتی که وفایات و تولد این اشخاص را ما فهمیم الان مثلا زید و اینم احمد زید ای که به یسوسی آمده در سالی که احمد وفایات شده چند سالش بوده؟ سیزده سالش مجده. آیا سماعی کراویی و مثلا تیزد سالش هست قابل قبل قبل قبول قبل از کسیم؟ این محب در این محب در خلافه از اینه که پذیروبته دمیشه اگر مجرد هست تقدیر و قسمت نمی‌شه ما ما غیر از اصحاب غیر از اصحاب تقدیر و اگر موضوع تکلیف باشه رابی یک رابی راشدیده باشه و در آن سن بخواهد در مسئله از طریق عثره اشا تقدیر نشه نهی صلايين تحت مفسر قاهرون دیگه چه ارتباطی اندو می راحه و می سن باش بتعریف این که رابی با هم ملاقات داشته نه داشته مثلا راهی را دیگری که باشه میگه فاین کان لقی و فقط تردنا. فینکرن الادی اوگه نگر دو ترابی ما هم مناقع داشتن ثابت بگیم زید از احمد شنیده اگر دو ترابی ثابت بشه که از هم شنیده باشن که بخش قبلن گذشت بخش مان بخاری که در بحث معاصر از شرط میگذاره که چین دو ترابی با هم مناقع کرد داشته باشن درست؟ غیر از اینکه هم عصد باشن زید هم عصد و احمد میده شرط ملاقات هم گذاشت که ملاقاتشن هم ثابت باشه. گفتیم این شرط را ما بخاری برای ایچی گذاشت. چرا گفت که باید غیر از همعصب بودنی که ما مسلم هم باشه متقفه هست. چرا گفت که باید ملاقات هم باید داشته باشن دو تراویی؟ این درست خویی بوده آخر این درستی که اما داشته. ساله گذاشته. برای نحی مرسل خریه از سال خریه. درسته؟ گفتیم که شرط ملاقات گذاشت شر ملاقات به خاطر اینکه در زمان امام بخاری مرسل خفیش امرد داشت. دو نظر افری که با هم ملاقات نداشتن. عمدن مثلا میومدن با لفظ عنه از شیخی روایت بیکردن و مشکلی نگیدن. امام بخاری شد ملاقات بذاشت در اینش می ها که مشخص بشه که این حدیث مرسل خفیش هست یا نیست. پس اولیش فَنْتَعْنَ لَقِيَهُ وَبَدَرْ بَح جلد همی که از بکار شده پس داشته مرتبه صحیح است اگر در دو تلاوی با هم ملاقع داشته, داشته باشند و شرط با و این را دینم و شاگرم تومده تدویز نداشته باشه این شهر دارد صخمت تدویز نداشته باشه یعن اگر عالمی اون را انتقاد کرده و گفته که این روی مدلت هست مدلت هست این روی با لفظ عقر و ایت من ثابت باشه ما نمیشم به پدیگه مثل ولی داندوشن ندوشن ندوشن درست؟ ولی داندوشن ندوشن ندوشن متحق به تدویز و خودشن مقرار بیکنه اگر بيویات و بيو بلویات عن احمد بل افزعان ما نمیتون ماذا شفتا دیم هر شخص ملاقات داشته باشه با اون احمد پس اولی احتمال ملاقات باشه و این لم يكن لقیه رو فأمکنن يكون معاصره فهو لمحل تردد اگر احتمال ملاقات باشه و امکان معاصرات هم داشته باشه محل تردد که صحیح در نظر ما مسلم هم بود کچی؟ تدرده دوشید همعرض باشد ولی ملاقظ ثابت نباشید تخت بومی همعرض باشد ولی ملاقظ ثابت نباشید کیر شرط سی هست؟ شرط مسلم در صورتی که راوی صحبت تدریس داشته باشه در همعرض بودن سخه بودن کافی هست در, در توجه این هم بازم بودن صحيح سيبو وان لم يكن اي بين دم يمكن فهو منقطع كفالة عن ابي هريره واجا يعني نما عصرات واشه ولن ملقات واشه فكل حديث جهه منقطع نما ملاص ва як он мусалех сахес дусра дина ҳам аз будан ва на ҳам бо ҳам мулоҳаза дошта мисли ин робаи таҷозаи азов бурдаре ки инро баъд муқаттар لصارح لما لا فدا سرعه المصره لا عرف ضاعط فهذا عبره لما وتقوى عبر غرض واره غرض بالغ و على السن و ما يدعو ذلك جره اي فان الدين لاثفا وان دعى المنيه قال كانيه الله قال وين وسبره وسبره بلد ذا يعرف به واعتقد ذلك كما تقول حدثنا البخاري فتقصد به ما يوقع فلوقدر الناس او حدثنا علي لما وراء النهر وتعني نهر فتعني هو تعني نهرا ووحدثنا بذلك بالزبيل, بالزبيل و تريد موضع بخوص فهو قعدتنا بحرام و تريد قاية الناس فهذا مجتمع فالجبار اعتاده نعم نقول حكم قال حكم عنها هل كان كده بحث قال عن اختلاف شديد هكذا؟ که انشاءالله جلسه آینده به طور مفصل بحثش رو خواهیم کرد از آن چیزی, آن چیزی که امام ابن سلاف و امام ابن کسیر در کتاب مفصل علم حدیث زفت میکنند. میویم با هم به بحث مفصل. الان روایتی که روایت حدیث معاذق که در نظر بخاری هست که امام بخاری میبیند. قالحشان رو امام. مفصل انشاءالله اینجا به خواهیم کرد. اعضوازات و اون احتیااماتی که به این روایت هست آیا این روایت اصلا جزء اصلا آیا بخاری مدلل هست آیا این قاله ای که می بیاد آیا امام بخاری به اون متهم میشه و آیا بخاری از هشام نعمار مش دیده همه این موارد ان شاء جلسه آینده خواهیم داشت آیا واقعا قاله مثل عن هست شا ان, ان شاء الله کتاب قواعد احادیث رقایم رو برد و همچنین یا کتاب مختصر علم حدیث ان شاء الله از بخیخون همون خواهیم خواهم که آیا این جمله‌ای که میگه از وحاک مخالف معان آیا این گفته درست است یا نه مقید مطلق است بر نصیخان که ببینیم علما درباره این گفته خصوصا علقتشون بعضی عترت نیست اصلا خیلیامیت این حدیثو تضعیف میکنه حدیثی که در بخاری هست حالا گفتم بذلاتی و اسبابی که ان شاء الله بذکر امام سوت باز ان شاء الله ای این مساله رو بیان فرانکد میگه که و کسانی که تحلیل میکنن اقرازی دارن هدفایی دارن اقراز معنی هدف از جمله هدف ما خلاصش رو گفتین الان باز دوباره تکرار میکنید اولا به خاطر اینکه راوی ضعیف هست به خاطر اینکه ضعفش مشخص نشد که این خیلی مذموم و بد است و کسی که دانسته بشه که این نوع عمدن ضعیف رو حذف میکنه مجرور میشه متهم میشه چون دین نصیحت است و باید به مردم بگیم که چی درست هست و چی درست نیست و یا به قصد طلب علوه که یک شخص رو خواهد مثلا به بالفرص این اصناد بین من و بین رسول الله خیلی کم من از شیوخ خیلی برتر شنیدم یا اصلا خیلی برتر هست یا میخواهد بگید شیوخ هم خیلی زیادن افقلانی و فلانی شنیدم یک شخص را به اسم کل با کنیش زک میکنه ی کارش یا با حرفه و کارش یا مثلا به اسم شهری که الیش مشهور نیست مثلا میگه حذثنا بخاری میخواد بگه که امام بخاری به من گفته در صورتی که امام بخاری بهش نگفته کسی که مردم با بخور میده وزن فرض یک شخصی یه جایی می mie به اون بخور میده مثلا فرض کن که روایت الیش شریده بخاطری که توهم ایجاد بکنه که خود بخاری بهش گفته میاد میگه حذثنا البخاری یا مثلا حدثنا علي بموراء النهر اسم شهر يار که توهم ایجاد بتون علی ابن مدینی گفته در صورتی که منظورش ماوراء النهر علی یک شخصی بوده ماوراء النهر پوشته یک لوری نه منظور ماوراء النهری که منظور در اون چیزی که مشهور هست کتاب های حدیثی یوا میگه که مثلا حدثنا که یک شغلی هست که معروفه الان به اسم حسینی در نزدیکی های مدینه خب یک شخص مثلا شهر زبید ما دوتا داریم یکی اونجا داریم یکی هم در قوس در اطراف روم شخصی میاد مثلا به فرز بخاطر این که ترهم ایجاد بکنه که این واقعا از علمای زبید اون منطقه هست میاد مثلا او حدثنا به زبید و توریزو موقعا به قوس میاد مثلا میگه که در, در, در زبید فلان راوی به من گفته. در صورتی که این زبیر شهری دیگر هست مثلا بالفرز ما امام مالک داشته باشم از احل مدینه یک جای دیگه مثلا اسمش مدینه باشه و مالکی دیگه در اونجا باشه میگه حدیثتنا مالک بالمدینه. مدینه خب چی نیکی چی تو مالک فکر بکنی تو همون مالک ابن انزی هست که چی؟ در مدینه هست او حدیثتنا به حرام ما تو بیدو قریه تل مرد جی منظور مثلا در فلان گفته، منظورتون این یکی منظور شخص روسیه حدت از من میگه این احتمال هست درش یعنی احتمال اه... که شخص راست بگه و دروغ بگه یعنی قصدش مشخص میشه از ورنسی حاضر و واقعش میگه از ورع و از تقوا و از ترس از سرس خداوند اینه که انسان این کارها رو راها بکنه بازی با الفاظ رو راها بکنه که مردم بیچاره سر دردمی نشن از برای انسان اینه که این چیزها رو را بها بکنه حالا ان بحث تدریس حسن بطری از ابو و مباحث دیگر از بحث تدریس شدها و بزار بکنیم به جلسه آینده اگر بحث شد جلسه آینده اگر بحث نشد شده بعد جلسه آینده پیرامون بحث حسن بطری و بر حروات شده برره شده برره شده بحث کنیم کرد این خلاصه بحث بود کسی اگر تا اینجا سوالی داره محسس کنیم Subhanaka Allahu Hamdi, Subhanallah al-Hammid, as-safrathati, hu-daywa sallallahu ala ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin.